که بود راجعه تمسک اضعیت اصولین شیعه و خودجیت واحد به اجماع البته شبیه این وقت هم در کلمات اهل سنت هست که بیشتر به همون سیره حبیباً نشور سیره عملی که در زمان صحابه و بعد فقه ها و بعد علمه به خبر واحد عمل می کردن. شبیه این وجه هم در کلمات اصحاب ما آمده, آمده نحوه استدلال فرق می و از زیر بناهایی که داره اونا بیشتر خمستو که به عمل صحابه و از این قبیل در اینجای کردن اصحاب ما وجوه دیگری به نحوه دیگری حالا به جای عمل صحابه مثلا عمل علما یا حتی عمل به سامح کلیه او هم در این کتب متاخره اصولی شیعه مجموعه این مجوع رو جمع کردن به جمله در کتاب مرگوم ناینی مرگوم استاد شیخ مجوعی رو تقرید کردن برای اصطلاحان اجماع. در اینجا مرگوم استاد این رو به پنج وجه ارجاع دادن الوجه اول اجماع و منغول منش شیخ توسی علاقاتیت خبری واحد این مقدار عبارت شیخ بود در باب حجیت خبر واحد مرحوم شیخ انصاری در صاحب همداره اولشان مراجعه کردن اصلا دیدن البته عبارت شیخ در اجماع منقولش بیشتر ناظر به عمل شیعه است که شیعه از قدیم تا حالا به همین روایات عمل می‌کرده یعنی تقریبا اجماع شبیه ورج سومیه که اینجا خواهد آمد بله البخت ثانی از اجماع القدی من جميع الوعلما ادعاء در مرکز و اثباتی علیها بروجیه و خلافهم غیر قاضیهم فی حجیه الاجماع مرادش از اجماع قدی در اینجا یعنی در این مسئله ایده دیگری هم ادعای اجماع کردند عملا فقها یعنی وقتی مراجعه می‌کنی می‌بینیم که برخش این ادعای اجمانند عملاً عمل کرده. نگاه میکنیم به اتابهای علامه محقق دیگران میبینیم که غلمان به اصطلاح قائل شدن به خود خبر واحد مرادیشون از اجماع قولی یعنی وقتی به اصطلاح امروزی ها در امروزیان روزی های اجماع محصل در مقابل اجماع من بود این وقتی نگاه هم میکنیم میبینیم که بله محقق هم عمل کرده الله عمل کرده مثلا شیر اول شیر سانی علمای دیگر گفتن این مکلب رو که خبر وارد وجده نه که تمسو که به اجماع کردن اون اجماع منغوله به همون اجماع اول اجماع دوم، اجماع قولیست که ما وقتی بررسی میکنیم یعنی به استثنایه مرموم سید و اطباع سید به اصطلاح ایشان به استثنائی این بقیه گفتن خبر وجده پس اینجا اجماع هم هم به دست میاد و خلاف هم درقاد فهر وجد یه بحث معروف بوده که اگر مخالف اجماع معلوم و نصب باشه و قانونانش واضح باشه شناخته شده باشه این موزر نیست روی مبنای اصحاب ما که وجد وجد اجماع کشور از قول امام اگر مخالف پنج تا دست افراد معلینی باشن چون میدونیم قطعا امام دردان نیست پس اون اجماع بجرد میشه پس اولی اجماع منبوله رو بکردیشان دومی اجماع قولیست یا بگیم اجماع محصل. بگیم این عبارت ایشان بگیم اجماع محصل و مخالفت سید مرتضی و چند نفر که مشخصن این محسن نیست وشت سبم اجماع قولی من جمعی الو حتی از سید و, و اطباعه این هم شبیه همون اجماع دومه اجماع محسله، لکن میگه حتی سید هم موافقه به خلاف اجماع دوم. و خیلی این تغییر اینجوری میشه که سیر ممتاز قائل به خودی نیست چون قائل به انفتاح باب علمه. اگر ایشون هم قائل به این صدای گفت خبر وارد اجماع الجماع من مجموع علماء حتی سیر و به دلیل انه ها اختار و عدم الحجیل اعتقادی انفطار بابل علم به احکام شرعیه یعنی اگه سید و هم قائل به انصداد بود خبر رو حجت میده چون اونها معتقد بودن ما در زمانی هستیم که انفتاحه دیگه حالا ما اینطور مجموعه تقریباتیست در کلمات اصحاب آمده من میخونم تا بعد مناقشات مرحوم استادم اجمالا میگم بعد مثلا که حقیقی به حرفایی که زده شده مثلا فرض کنید شیخ توسی در یا شیخ مفید در قرن 4 بوده قرن قبل مثلا سید مرتضی فرض مثلا کلینی یک قرن تماما قبل از سید مرتضی باشه ما زمان کلینی که ایشون خبر به حجتی نرسسه انسداد باب علم بوده اما یک س... یک بعد سال بعد این سید مرتضی و باز ابن ادریس یک قرم بعد سهل مرتضاست بگیم باز ایشون هم انفتاح می جده است مثلا ابن ادریس او او او او او. یا مثلا ابن زهره باز بعد سونه از کل متکلمین ما بحث انفت. متکلمین هم کسایی که اصولا تو خط کلامی بوده مثل همی سآل مجموع بیان نه همه شو مونکر حجید خبرواهده حالا ما به احترام برقیم استادین تعبیری که شده به اینا انصافند ادعای که از واقعیت نیست. الوجه الرابع علی اجماع العمل من جميع العلماء علی العمل الاخبار التي دائبنا و لم يخالف فيه احد منهم حتی مرحوم سید این اجماع عملی در مقابل اون سه تا اجماع اون از نظر تقریر وجه اول اجماع منقول یعنی مراد از اجماع منقول شیخ مختص خبر حوجتون بر اشما این مراد شما وجه دوم و سوم اجماع محصل یعنی مراجعه که می‌کنید تحت تک علماء می می‌بینیم عمل کردن به خبر واقع شده وجه دوم شامل سید نمی‌شه وجه سوم میشه به تقریر تقدیری وجه سوم یعنی وجه ثانی اجماع محصل فعلیه وجه صادر اجماع محصل تقدیری که اگر سید هم به انصلاب بود ایشون هم مراجعه میکرد داره باید. اما بچه چهارم اجماع عملیه این اجماع عملی مرادش ایشون اینه مراده اینجا, اینجا توضیح ندن آقایون اگر خواستن توضیح ببینن مراجعه کنن به خواهد بستور مرموم ناینی یه چند سفری مرموم ناینی در اینجا توضیح داده این اجماع عملی رو. مرموم نایمی اینطور میخواهیم بپرمانی که ما تارتن تو خود این مسئله ادعای اجماع, ادعای اجماع میکنیم اخ را به عنوان یک مسئله اصولی نه عنوان یک مسئله به اصطلاح فرقی اصلا تو خود مسئله اصولی میگیم که علما در وقتی مراجعه میکنیم علما تو مقام استدلال کار نداریم خودش به حجت هست یا نه خوب دقت بکنید یک کار نداریم خودش به حجت هست ثرو وارد مییارم اما چه بگی چه نگی تو مقام استدلال تو مقام استنباط فقها شأنش رو رجوع به روایت اینم رجوع میکنه به روایت اونم شو رجوع میکنه به اصطلاح ایشونه اجماع عملی رو یک نحوه از اجماع میدونه تو مسئله اصولی ولو اون عالم قائل به حجیتم هم نباشه میگه اینجوری یعنی حتی ولو سید مرتزا قال وجود خبر نیست اما توی فکرش که نگاه میکنی خبر رو آورده استدلال به خبر رو آورده فقط رفت کرده دقیقه مورد اجموع عملی چی سیره عملی علماء این اجموع عملی سیره عملی علماء تمسک به خبره سیره عملی نمیم خیلی بگیم مثلا محقق گفته خبر وای حجت علامه گفته مثلا این قسمش حجت اون آقای نه اینا رو نمیخواد بگیم دنبال این نیستیم اون اجوان محصله نه توی فقه که نگاه می‌کنی شو استدلالاتشون وقتی تو فقه صحبت میکنن کل علما حتی امثال سید تمسک به خبره بله ممکن است بگی این خبر حجت اصلا خبر حجت نیست اما توی استدلال فقه میارن مرحوم نایی میگه مراد ما از اجماع عملی دینه اینجا آقای خویی یک ست نوستن اجماع عملی من جمعی العلماء علال عمل او الاخبار علیتی بایدینا ولم یو خالفیه احض و منهو نه مثل سرموزا قائل نیست ببینی؟ اما چیه بحث تا باید خیلیش میکنی خودش که میخواد بگه هم که به اجماع میکنه بعد میگه رعی دو مثلا خبر بالا. یا مثلا قال بعض از, از خواب نو و عملاً به خبر گلان ببینید تو مقام عمل توی فرق که میان تو مقام عمل ولو از واقع مختلفیست ولو مبانی مختلفیست حتی از مبالیش هست عدم ها خبر لیکن توی استنباطاتشون توی استضالاتشون خبر رو می نیسن. این هم اسمی باشه اجماع عملی این اصطلاح مرمول نیست از این جا شهر ندن یه سرط فرمودن مابعداً این بیشتر اینجا توصیف شده و اسم جوجه اجماع عملی یا به اصطلاح خود ایشان ادعای اجماع تو خود مسئله اصولی ادعای ایشان وچه و چه پنجم هم اجماع عملی منجمی علم و این بیشتر ارزش در تو کلمات اهل سنت اومده اجماع عملی منزه من صحابه رضا صحابه هم اسم صحابه رو برده این استدلال در اونها است. هلا زمان نهادا و کاشفن، کاشفن اندردن معصوم یکونو کاشفن اندردن معصوم اختلاف مبناس بین ما و اهل سنت تو اجماع اونا خود اجماع رو حجت پی نفسه میدونن ما به عنوان کاشفیت و طریقیت به احراز رضای معصوم این پنج وجه در اجماع که از کردم این تقریب پنج وجه تدریجا در طول زمان یک مقدارش اشمال سنیا بوده بیشتر وجه پنجم یه مقدارش هم با تقاریم مختلف اشیعه بوده یه مقدارش هم بعدها هی تدریجا بشه داد مجموعا به پنج ورش این رو بود. بوده برمومه استاد می که ولی انصاف انشه ان من منها دلوجولاتن هست اما وجه اول فلانروفی واضح در نوجیه تل اجماع المنهول این دلقائل به ها این نماهی لکونهی من افراد خبر چون اجماع مقبول رو از افراد خبر میدونه فکیفه از سفر استدلال رو بیگه علاقه جید الخبر چطور میشه به این اجماع قبول بکن؟ البته این مطلب قریبی از اصطاف که بله یه سفر استدلال روی استدلالش اینه که مرموم شیخ توسی قدس الله نفسه در زمان خودش حکایت از این میکنه که الان من می بینم علمای بغداد علمای شیعه در بغداد در خراسان، در قوم در شهرهای دیگه علمای شیعه به این اخبار تم از توک کنن این که خب این که مشکل نداره که این وجدانیه خبرش خبرشه این اینه دو اگر که این کی بی اتفاق افتاد کاشم هست که امام راضیه به این کن این نظر من رو بشه این چه مشکلی زد کجا مضافاً الى ما تقدمه که بحث الاجماع المنقول من عدم الملازم بین حجیت الخبر و حجیت الاجماع المنقول بله شما فضل خیلیم بود که بنابر حجیت حالا ملازمه و امکان تفکیک که بین همان ولی امرو کذا دید لاختصاص عدلت الحجیه بالخبر الحسی الان ما بیان بیانه عدل حجیت درست خبر حسی را میگیره اما ما یک زیده دیگه هم داری که خبر حدسیه مثل اجماع را هم شامل میشه بله غیر اجماع را نمیکیرد حالا یه حاله مرهوم شیخ توصی، ایشون قائل بینی اشکالی که ایشون فرمودن خیلی بر ما روشن نیست و هم ملویت و سانی ففی هم نقولی سفل مقام اجماع تاب و دیل یک رزن معصوم لده و انده مستند مستند در مجمعین آیات و روایات متقدمه ولا اقل من احتمال ظالم از کرد این است که که ای از متاخیر نو اطولی نوشیه رو اون اصرار دارن اون مبناه است که بچه حجیت اجماع منغول اصلا بچهش کاشفیت از قول امامه این نکته وقتی اون میگن اجماع منقول یا اجماع محصل حالا اینجا که مرادش اجماع ما هستن اجماع ما هستن بیه بیجهت یعنی به بی یک صورت اونجایی که کاشف ها از قول امام باشه وقت اینطور توضیح میگه میگن پس باید اجماع علما به سنخی باشه مثلا پس به مراجعه کردیم بیدیم علما قائل به یک مطلبی هست این اتفاق اینها یک سنخی باشه که کاشف از قول امام باشه تفاوت این است یه ای بوده یه خصوصیتی یه رنگی. اون رنگش اینه که دلیلی تو مسئله نباشه. چون اگر دلیلی تو مسئله باشه، احتمالاً دلیل اجماعشون همون روایت بوده. ولی اگر مشهور شده تو کلمات و متأخرین، ما اجماعی که از حساسیش اینه وقتی کاشف از قابل امام که دلیلی یا ولو محتمل و دلیلیه نباشه چون اگر دلیل باشه یا محتمل دلیل دیگه اجماع رو نداره چرا؟ چون هرز کردیم اقوال رو وقتی نگاه کردیم اقوال باید به جوری باشه که ما کاشف از قبل امام بدونیم اما با احتمال استناد به مثلا ای حتی ولو احتمالا دیگه اون کیفیت تو این اقوال نیست یعنی باید ما یک ای، مثلا احوال 500 تا فقیه رو جمع کردی این احوال باید یک نحوی باشه که بتونیم بگیم اینا مورد نظر امام معصوم، امام معصوم نظرشون همین. این درجه ما در حدیه که مثلا میاد یک مسئله در میبینیم می‌بینیم همشون یک مسئله رو گفتن، با تو توادله اصلا وجود نداره، هیچ دلیلی وجود نداره. مثلا همشون اینو گفتن. مثلا همین یک مسئله در ازدواج معروفه که زن اگر ناشده شد نفقه یه برش واجب نیست لازم نیست نفقت بذار خب این خیلی مطلب مشهور است و ابدعا شده حتی از اهلستانه هم مشهوره اونا هم همیتون. خیلی هرگیب اونا هم اجماع و... که در مسئله بین علمای ما هم همونتونه روایت هم نداره ببینید وقتی روایت هم نبود و خیلی مشهور بود بلکه مثلا در بین علمای ما شاید تا قرنه 11 تا 12 هم کسی مخالف هم نداشت مرحوم صاحب دعای ابداع مخالف چون گره بود نداریم ولی اجماع اهل اخباری ها اجماع رو حجت میدن خب اینجا ببینه این مثال خیلی واضح این اجماع میشه بگیم کاشف افقوم امام چون میگه این همه فقها با اختلاف مشرب با اختلاف مصلحت قائل شدن بین که نفر ثابته روایت هم کو مقام نیست پس حتما نظر من واضحه که امام این قول امام اینه یه ای خلاصه میذاره اما اگر مدرک داشتن تو مساله حالا مدرک ضعیف یا نه مثلا مدرک آیه نعر بود من. خب اینجا نمیتون بگیم قول علما کاش از قول یعنی این نکته فنیش اینه که اتفاق فقها و علما باید یه بی باشه داره یک رنگی باشه داره یک خصوصیتی باشه داره یک شکلی باشه که ما بتونیم به قاعده ملازمه قول علما رو کش بکنه با وجود دلیل یا با وجود محتمل و دلیلیه دیگه به این شکل نیست لذا این است که از کردم در کلمات متاخیلی مثل همون نایی هم که خیلی اصلاح دارن زیاد متأخر شده و توضیحش از کردیم در کلمات قدما هم چیزی نیست به این, این نحبات شده محتمل و دلیلیه این است که بعدها پیش آمده و این صرفش هم همونه که کرانه از کردیم دلیل حجیت اجماع پیش شیعه واضح میگنی اختلاف داره مثلا مرموم شیخ حتوسی به قاعده لطف میدونه این آقایونی که این حرف زدن به قاعده حدس میدونن به قاعده ملازم حدسن ملازمه هست بین اتفاق و بین موافقت با قول به اصلاع ما یعنی اینطور گفتن این متعارفه فرض مثلا در تفاسیر مارکسیستی فرض کنید یه مطلبی تو خود نوشته مارکس نیست اما همه مارکسیستا مؤت... مؤمن بو باسن میگن خب همی که همشون مؤمن هستن ملازمه داره با مواغر با نمیشه همی که مؤمن باشن در کلمات خودش خودشم نباشه این یه طریقیه به اصطلاح خودشون اوغلایی که اگر اصحاب یک مذهب واحد قائل شدن به یک مطلبی و این مطلب در رأی صاحب مذهب ندیدین کشف از کنیم از قول اصحاب اون مکتر که خود صاحب مکتر مقیده شید اسمش قادی ملازم است. اسمه قاضی حقس تلازم ما بین اقوال علمان و بین رعی به اصطراح و نظر صاحب مذهب هزباب هست اما خب مرحوم شیخ حسوسی قدس الله نفسه از این راه قائل نیست شیخ فضوسی در حقیقت میخواد میگه آقا من در زمان خودم که نگاه می کنم علمای شیعه همشون به خرابات عمل میکنن این نظر شیخ فضوسی خب از اون طرف هم ما میدونیم به قاعده لز امام نمیشه از این ها نباشه راضی نباشه پس دین رو قول امام میکنه این استدلالی که مردم استاد شما نیست مقام اجماع و تعبدی چرا ایشون اجماع تعبدی دیر به معنای بله شما بگید ای که شیخ رفتن باطل اون بحث دیگری ایست و الا شیخ این و هم ملوش دستاله فیره به علیه مزاقن الامازه کن ناطر و جلسانی یعنی هر آن تقدیری میگیم این تقدیری اگر سید مرتضا هم انصداد میدید قائل بود ازمین المحتبن از و اطباق علا تقدیر ارتضام به انصداد لایل به کامل خبر خجسم بالخصوص بله یرانه اون من افراد زن المطلق که المحققی القومی چون ممکن بود سرموزان که به انصداد بشه چون که این بوده حالا که به انصداد بشه از باب زن مطلق حتی ممکن از اون تویج در ایک باشه ممکن از بابه حجر خبر باشه روشن نیست که حتما حجر خبر باشه و هم مذجب رابه ان اما عمل المجمعین <تصفح> ليس مستند الا خبر <تصفيق> اما این که اجماع عملی هست درسته اجماع عملی هست در اصول، در فقر تو مقام استضحار و استنبال و استدلال اول و از عدلشون خبر لفت مبناشون یکی نیست یکی به عنوان خبر صحیح عمل میکنه که به عنوان خبر موسیقی به عمل میکنه که خبری به عنوان اینکه موافره با اکتیات عمل آخری مبنا شد یکی نیست بله لعنه عمل جمعه مثلا عمل جمعه من هم امکان مبنیه لیکن عمل جمله دیگه چون این اخبار رو مختوب استدور میبن. یا عمل ده دیگه برای که در کتب عربعه مختوب استدوره و قدرده آ که اخبار موجوده کافی مختوب استدور مثلا فلا یکونه هنها که اجماع اون عملی یا علا حجی خبر واحد یکونه کاشفن ان رضا المعصوم سلام الله علیه البته دقت بکنید این مساله به کی شود در اینجا میفرمایید حول و هوش اجماع با همون مبانی شیعه که کاشفیت باشه و ورج الخامس عمله پنجم که اجماع متشرعه باشه عمل المتشرع ابن اصحاب الی نار حضرت تابعین به خبر ثقه و امکان غیر قابل کار. اگر چه قابل کار نیست اذن المخصوص به ان جميع المكلفين في عصرنا الیوم اذن المخصوص به چون این واضحه که جمعی مکلفین در عصر پیغمبر و معارف مصاب لم یاخذوا الاحکام نفس نلی اول امام علیه السلام مرسوم که در نفس بلا واسطه شخص آخر بلا سی ما النساء و مخصوص از زنها بله یه في فی منزاله لن یه تمکنون منزاله فی جمعی اوقات الاحتیاط نیمی شهر وقت احتیاج بیه مسئله بود خدمت امام سی ما اهل البوادی و القرار و البلدان کسانی که در میدانهای راه های دور هستند، فا کل واحد من لا یه من الوسود الى المعصوم عليه السلام فی كل وقت من اوقات الهاجه الى السؤال بل كانوا يرجون جون یا ال احکام منهم و حالا کل رو وادهمون این واضحه که اینها مراجعه به سقاط میکردن چون واقعا راهی نبوده غزی نمیتون که یک یکی مراجعه کنند خیلی تکر از مرحوم حالا این شد دیگران اینجور جور استدلاللا های روز خب این واضحه که ممکن ب که خوپ که می نوشتن کتاب در اختیارشون باشه نگاه بکنن. ممکنه در مسائل به خبر وارد نبوده چند نفر میکردن میکردنطلبیه به قبول شده. حالا در خیلی از همین بولشون داعت داعت دوبده مرزو خوب از آبایشون اجازهشون نماز بگنه رو خواستی میخوندن نماز مید بگنه رو خواستی ممکنه تمام این مسائل هم بدون حاجت به خبر واحد باشه عمل میکردم به خاطر به اصطلاح خلقیه و قبول و اجماع و شهرت و واضح بودن و روشن بودن و نکاکی از این قبول کتاب داشتن به خاطر اینکه پینامبر دارگای افراد رو میفرستن. برای این که برم این افراد که می در خود مکهی که بودن همون مجده کردن به مدینه فیزستان با این که همون مدینه خوش می تشاهی بردودن این ترکشان به عنوان نماینده است او سقطی به این معنا که ایشان از طرف پیغمبر و خوال چوجه به خبر وارد ندارد تماس این که ایشان که مردم همیشه امکان نداشتن دو. مثلا زنها برد مثلا دهات دور و شهرهای معید و این الا ان هو لا يشفع انكمر خبر حجتن تعبديه لان عمل المتشرع خبر ثقه لم يكن بما مشروع بلي بما عقلا بل البته اینم حالا ایشون در ذیلش نوشته این بحث سیره ایده بعد از اجماع آورده چون اجماع تعبدی است سیره عقلاییه حالا ایشون معلومه وسط سیره رو دیگه بعد از اجماع ذکر نکرده. یعنی بعد از کتاب و روایت اجماع بعد سیره بعدش هم عقل عقل بعد میره اینشالله مرمو استاد دیگه سیره و اغلا رو در زید اجماع اجماع استدار هم با عنوان حجیه تعبدی داره اما سیره نه حجیه ارتکاز اغلایی داره بل به ما هم اغلا به این سیره اغلا قد استقرر علال عمل خبر استقریتی جمعی اموره ولذا خودیشون هم ملتظر میشن که خبر سقه حجته حتی در موضوعات چون معروفه بین علماء که بنابرای حجید خبر سقه فقط در احکام ادعای اجوان شده شوشن اما در موضوعات خارجی باید دو تا باشن مرموم استاد استادین قبول نداشن این همی که از بحثیست که در فقه مطرح شده که اصل اولی حجید خبر سقه در موضوعات الا ما خرج به این مبنای استاد از در از اخباره یا مثل این مبناه را قبول کرد یا اصل اولی عدم حجیت خبر در موضوعات الا ما خرج به دلیل باستن گفت قول محزن حجده بلان. یه موارد خبر ثقه حجت شده اون قبول بقیه عدم حجت مرمون استاد دلیلشون این بود دلیل ما بروجرد خبر است رساله سی اوالان سی و اوالا فرق بین موضوعات و احکام نمی‌دونم این خلاصه دلیلشه توی سری اوالان نمی‌دگه در خصوص احکام موضوعات خارج نمی‌شه این نجسه پاک این متکیه ملکه متکی ملکه نیست تمام این وقت داخل شده که میگه وقت داخل شده سر ایشون میگه خبر حسی باشه هیچ فرق نمیکنه. مدعانا العمل به خبری به خبر ثغری جمع امور روشن شد ما در جمع امور یعنی چه موضوعات و چه احکام در تمام موارد، البته بیشتر که خبر هستی باشه، حدسی نباشه باشه. ولی ان رده از هر شاره، ردی هم نکرده. فاین نهول ورد عن ال عمل در خبر است. هیچ وسیله که ما وسیله من امو عن ال عمل در قیاس، مان ال عمل من ال عمل در خبر است. کسی این قطعاً بیشتر محله لازم. ورد بلغت روايات المانه مانع ان عمل بر الا خمسه ما اثر وایت هرگز در مورد پونسلن شویی این استدلال و استاد و هم مربوم شه ختوصی داره. مشویی حالا تو در دنیو برا که شون چون اون ابادت مربوم شه خانسری نارگه تو اسالا و ماده شه تو آبده داره. یکی از عدلش ختوصی جمعی از ها به ما مسلم بوده به بریاز عمل نمیکرده. اگر یک فقیه بریاز اول میکرد این شالو از رو ترکی کرده. از او اشتباه میکرد. اگر خبر واحد هم عمل به ممنوع باشه این هم باز باشه اگر عمل به خبر واحد ممنوع باشه اگر کسی به عمل واحد عمل کرده اصحاب رو ترک کنن و کسی که اگه اگه اگه اگه اگه اگه مرحوم شیخ الله نفسه این روز داره شاید مثلا به نحیزو مجموع استاد متأثیر به اون کلمات بودن ونم تصرف من عمل به خبر سقه واحده. و یستک شبا منزال که کشفان قطعیه انشاره قد امزا سیرتل آقلا من نمیشیده از قیاس خبرش خواهده این احلی نیستش که به خواهده باید آنید نه منوشی خبرواهد عمل میشده خبرش خبره لبش نهنی میشه از قیاسی بیشتر عملا در فکر فتحه سلم مازکرنا خلاصه بحث این مطلب از اول حجیت خبر تا اینجا انمال قمدت فیدهی به خود خبر یه سی از الاولان که توضیح هم کران هر سوره بعدم خواهد آمد سیره احتیاج به امضاء داره الممزاد امدشاره این اشکالی که بعدها شده که خیلی هم بقول خودشون تستا و اشکال دور و مور و صحبت این طولات می شده اشکالی نماشه بعد که خیلی هر و های درستی نداره. به هر حال ایشون میفهمند که ولایت دلیلها شیء امن ال اشکال، الا توقف ما اندلایات ناهی از اندل عمل در گفتن رادعه شاره این هست، این استدلال در کلمات کسانی که منکرها جز خبره هست گفتن خبر مفید زن شاره گفتند نرلان درون حک شده. شاره گفتند اتفاق مالی سرکبیه علم این هست، این کاملا شده. تمسرف شده مجموعه آیاتی که نهی از عمل به غیر علم شده پس اینا جلو این سیره میگیرن برفر فرض باشه بر از تعبدی خبر ثقه پیشو این آیات را دهن اون وقت سعی کردن جواب بدن که آی خودی خودشون سه تا جا جا افتاد کتاب توفاینا خودشان جواب دیگری میدن چون خیلی نقطه خاصی نداره یا با خودشون میدیم و بعد توضیحاتی که بعد شده از این خلاصه بست پس مرهوم و استاد تا اینجا عمده دلیل رو حجیت خبر رو عمدهش رو از باب سیره البته چون حالا بعد گفتن برای اینکه همین امروز این مطلب رو به اصطلاح معروف گفتر و تازه هست تمام بکنیم در صفحه 234 حدود 6 صفحه بعد از اینجا چون اشکال رادعیت که مطرح فرح می بعد مثل بحث حج... تمثل که بره باید با اخبا انه از سیره حالا اگر ما سیره قبول کردیم از اون چار قسم خبر چند تاش قابل قبوله اشون فرمان مقتزایی سیره حجیه تو صحیحه وله حسنه وله موثقه اگر سیره قبول کردیم این سه قسم حجتهه قرنها قائمتون علامر باها دل اقسام ثلاثه اینم نتیجه چون برداشتین فاز امروز حالا تا یکیشو خوندیم مساله را رو مطرح بعد ایشون از این نتیجه نهاییش اینه البته من احتمال میدم حالا شاید مثلا در اصول وقتی که فرمودن چون بعیده موقعل همشه اشتباهی کرده باشه ایشون نظرش بوده سابقه هم اگه یاد باشه شده مثلا هفت هشت موقع متعارضی نکته‌ای اونی که ما اخیراً خودمون تو دست جراراً از برام استاد میشنفتیم ایشون حجیت خبر صحیح و موثره حسن رو حجت نمیرازن یعنی و درست هم هستا من چرا حسن رو اینجا نوشتن طب واعده درست چون خبر حسن خبری است که راویش امامی ممدوحه اما توثیق نشده دقت واقع یعنی راویش امام مثلا گفتن جری و از اما ثقه در حقش گفته نشده توثیق نشده. چه قاعده دیگه اینشون میگه سیره قائمد صاحب جل خبر ثقه طبقه قائدم میگه ما که تکرار در درسازی شد چون اینشون هم تو که به سیره می ولی و رضا ایشون دائما دنبال توثیق بودن ولو توثیق عام یعنی نسخه کامل زیارت مثلا یک توثیقی میشون دائما میخواستن اما حالا چطور اینجوری نوشتن در این کتاب صفحه 234 ان سیره و یخوانه مختلفه سیره حجیه تو صحیح هسته ولا حسن هسته ولی موثله یا اصلاح مقرر از خودش اشتباه نوشته یا شاید مبنی استاد مرموم استاد, استاد سابقا اون بوده و از ها عدول فرموندن حالا این قابل عدول نیست چون این سیره که ایشون ادعا میکنن که تا آخرم ادعا میکردن سیره بر حجیه خبر سره است و خبر حسن که توصیل نظره اگر توصیق داشته چه صحیح امامی است که توصیق داره صحیح موسط هم امامی نیست اما توصیق داره اونی که با دردرس از ایشون یک چرارن و مرارن و تکرارن و جز مسلمات بود به جیت خبر صحیح و موسط از شما شون دریشون واضح دریشون سیره اغلا سیره اغلا خبر صفه این خبر سه شامل صحیح و محسن میشه شامل حسن نمیشه این راجع به کلمات ایشان که فرمودند. پس بنابراین ایشون بعد از اجماع سیره و سیره رو مستقلا نهاردن در زید سیره متشرعه توضیح سیره متشرعه آیا این جواب مثال ساله رنگ و خیلی رو تنگیم باز صحبتی رو یعنی من برای به حرفای ایشون سلالله